حدیث داریم که نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند که نهایتوکم ان زیارت القبور الا فزوروها فا انها تذکر الاخرہ من شما رو از رفتن به ها من کردم اما حالا برید قبرستان رو نگا بکنید و زیارت بکنید و دعا بکنید فا انها تذکر الاخرہ که خود قبر شما رو بیاد آخرت و مرگ می اندازد بگیرید عبرت بگیرید و آمادگی و انگیزه در وجود شما برای عبادت و اصلاح پیدا میشه. نبی و اسلام صلی الله علیه و جمعه پنجشنبه شنبه ها می اما آیا مخصوص کردن رفتن به بر قبرستان برای روز عید که حالا میرن با اونها دیگه یه طلب حلالی و بی بیان بعضی الان یه پیش پدر میری مادر میریم اینها بدعت هستند جایز نیست. تخصیص کردن رفتن قبرستان برای روز عید این بدعت هست جائز نیست. روز عید نیست. عالا برای مردون شعاری شده. عالا از کار اجداد میان اولی هم قبرستان میرن این از نبی کریم صلی الله علیه و ثابت نیست که روز عید مخصوص کردن قبرستان برند و این کارو انجام میدهند. روز دیگه برمیده. اما بعضی با اقیده باطل همین را یه عقیده خاصی دارند که میرم اونها منتظرن یا اونها را میگن سلام میدن که اونها دیگه انتظاراتی عجیب غریب دارن برای خود تعریف میکنن اینا ناجائزند و گناه هستند